گفتم چه کار کنیم که در تهذیبمون و درسمون و کارمون برکت داشته باشیم؟ یکی از کارهایی که خیلی برکت رو عبزون میبخش و زیاد میکنه دوری از گناه هست. مراقب بود با چشممون و زبانمون گناه نکنیم.